هش نه هده آن را من گذرم الان آقا بخون بسیار خون جان که نوست این آقا ما را شاید چاف دیگه فهم بکن این گرفتاری دوستان همه همینه که ما همیگن که آبا نشون بده با اینکه چاپا همه مثل هم نیستش که نوست دیگه خانه بخونه رو بر و بر من گذر نکر چش داشتم یک نظر نکر چشم داشتم ماه هست اینجا اینجا هستم دلوز چشم داشتم او یک نظر نکرد حالا ماه هست شما بدن نبود در سنگ با این که من با پشتنگ رو تا خوندی که من دیگه بهتر نخونم اما چون اینجا میشه و نزدی که خیلی میخونم که بسیده منم زبط چه میخونم که زمجم یه خورده هم تفاوت داره البته این نسخه من از این چاپ محلوم کن داری میخونم یه کمی تفاوت خرید رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم داشتم او یک نظر نکرد سیل سرشک ماز دلش کین به در نبود در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد یا رب تو این جوان دلاور نگاه داد تیر آف دوش نشینان نظر نکرد ماهی و دو مرگ دوش نخفت از فغان من وان ببین دیده بین از خواب سفر میخواستم که میرمشن در قدم چو شن او خود گذر ما تو نسیم سهر نکر جانا کدام سنگ دل که خایفه است تو پیش زخم تیره تو جان را سفر نکر کلک زبان کشیده احافظ در انجمن تا کس نگو راز تو تا پرکی سر ازال ایست که خیلی چیز نداره ازال آرخانه نیست آشغانه است توضیح خیلی زیادی هم نداره احتمالاً باز شکفت از بیعتنائی دوستی و گله در حیران چیز پاهمی نداره ظاهرا مثل که دوستی بوده که علاقمند بوده که و, و محبت بکنه به خاجه و نکرده و جوانم بوده گفتم چه حافظ شهنی زول داره یعنی وقتی بخیه یارب تو این جوان دلاور نگاهدار این پیرمرد هستن نبوده و با این کوچکی هم که میکنه نشونه این است که این آقا آدم آقا نیست آقا باشه از آدم جاسنگینی بوده ظاهرا برحال میگه که به من اطناعی نکرد رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم دار این صد قید که حسرته صد لطف بسیار لطف عدد نیست مثل اینجا این صد بار گفتن این کار نکن صد بار گفتم میخوند اون خانومی چی بود معوش بود عفت بود زلزل فرنگی بود چی بود میخوند صد دفعه گفتن بابا جون بگی منو. یعنی بسیار گفتم. بگی بله بیمال دور جفنی ماستی جا صد لطف چشم داشتم چشم داشتن یعنی متوقع بودن و منتظر بودن میگه منتظر صد گونه لطف بودن ولی او یک نگاه هم به ما نکرد. سی به سرشک ما ز دلش کیم به در نبود ظاهرن خواجه اصحار ایست بوده میونه شاید شامیو چیزی بوده بابا شکرات بوده میونه خواجه لایزیر هم کشیده غلی اصحار فروتنی هم کرده و باز ام. بابا نرم نشده است که سیل سرش که ماز دلش کیم به در نبود اینه مندمه آت در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد سنگ خاره سنگ خاره یا خارا که گرانیت روش میگند درنگی سنگی است که بسیار معروف به سختی از سنگ های مرکب آتش فشانیه و سنگ بسیار سخت به و برای که از چند تا سنگ خیلی سخت و امتال ایناست و در چیز در شعر فارسی مثلا بسیار به سختی یعنی هر جا که سنگ خارا یا سنگ خاره میاد مراد سنگ البته یه خارای دیگر هم داریم نقعی پارچه عبیشمی بسیار گرام برست خارا که ربط به این نداره قبل اما چون میاد در عبد من اینجا اسم بردم که بدونید سعدی میگه ابله صد اتابی خارا اگر به خوشت خریست اتابی خراب خارا لباسی میده که مال یه جایی بوده از ابلیشن خارا میگه هرچی لباسشو عوض کنی آدمی که خره و هم مقریت رو عبلیش هست سیل سرش که دلش کیم به در نبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد البته حالا خاجم میزن ما که اثر نکرد اما اثر میکنه برای اینکه این, این درس عدد درس زندگی هم هست من باید از یه آدمی که چیزه آدمی که از علمای بسیار معروفه مرد اسمون همون سکاکی یعنی سقاک قفتار کتابی هم ساخته به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم یک کوبساز دیگه بابا و بسیار صنعتگر درجه یکی بوده، صنعتگر خیلی بزرگی بوده و یه وقتی قفلی می‌سازه که مثلا خیلی کوچیک بوده، اندازه یه دونه پروانه کوچیک بوده بعد من چهار 5 کلیپ میخورده خیلی خیلی شاهکار صنعت و اینو میبره که به عرض خلیفه برسونه و تیک بکنه و میره و دوندگی و اون دفتر و اون مشریدی نه خلاص یه روز وقت میگیره میگن مثلا پنج دقیقه وقت دادن تو بیای اونجا کارتتو شم میره اونجا و بالاخره آب میشه به هر بحثی بوده تا تازیم و احترام نار میکنه شما میخاد توضیح بده می‌فرسد این چی تا می‌خواد توضیح بده یک فیره از بر میاد تو ممونه خلیفه می‌گذرست و, و بلند شد جلو پایین رفت جلو و کرد جلو استقبال دست گرفت دوست برای خودش نشست و شروع کرد به اون آتوم رفت کلی دسته و این پیش خدمت هم گفتن با این همه بعد بعد بعد که این بود؟ خبستان فلان عالم بزرگ مثلا عبو یوسف قاضی عجب این ما چه عمری تلکتا این داریم خواهد و میاد گرفته الان یه چند قدر منزلت یه شکیم حالا مرد چرک داریم میره وساط قابسازین رو بری می میره به درس می میره دارس کنن و درس کنیم که موت ها بیم این میرفته این با هم مقدمات علوم علیفی و مقدمات عربیتون رو هر کاری که از دوستم. یک روزی استادش بودم که کسی جان تو ارو سر هم کلاس تو استاد درجی یک کلاس زی خود تو علاف کردی آقای منیانی منی میدیم اینجا خود تو علاف کردی. و میایی می میری میفهمید که نمی‌کنید تو در این کار چیزی نمیشه بهتر این کارو ول کنید این بیرون باشه میو بسیار ناراحت حالا ازیت طرف کار کارو بل کرده دیگه نمیتونه برگرده دوباره سر اون کار معنی این, این کاران که اینجوری جوابش دادن من نمی نمیدونم فهمیده که کجا داره میره یه وقت میگه که از شهر میره من تو سر خیال خودش که میمراسه هوا عبرمش و میزنه باهار زهرن بارون رگبار بسیار شدید میگیره و عرض کنم که این بابا این بر اون ورد میگرده پناتگاه بده کنه یا آسیا فرابه بوده که نصف صرفش هم هده بوده پایین و نصفش سرفه بوده میره اون زیر فیلن که از صدمه بارون در امام بمونه و بارون بند میاد رگبار بوده بند میاد و این میاد که بیرون آسیاب خراب بوده. اینه که یه سنگ آسیابو انداختن اونجا سنگ آسیاب هم است که اونم در سختی شبیه سنگ خارست سنگ سواغ خوش میگم من فرنگیشو نمیدونم ولی پارسیس سنگ سواغ خوش میگم اونم بسیار سنگی محکمست اینه سنگ آسیاب سنگیم یه سنگ آسیاب جایی نمیموندی همون انداختن اونجا و این زیر این نودون هایست از بالا دید که این به مراخت اب داره چک چک بار ما داره اون چیکه و این نگاه کردید از این چکیدن آب روی این سنگ سماغ یک که بود به خودش میگه که بعدی که نه دل تو از این سنگ سماق سختره نه اون علم از این آب بندتر و بی تو بی خود کارتو بگید بر میگرده میاد و دنبال میکنه کارشو چه سخت های که اون از همین اثر کردن بارون دار سنگ خاره نه و هر حال ولی خود اینجا تعبیر شاعرانه است میدیدار سنگ خاره قطع باران اثر نکرد یارب تا این جوان دلاور نگاه دار که تیر آه گوش نشینان نظر نکرد بازم معلومه که کار دی دستش بوده و ممکن بودی که آخ، حافظ کار دولتی هم داشته یه جا در نصفه خاندهوی هست این در نصفه غزوینی و اینا نیست توی نصفه غزوینی هست مراکه هست مراکه نیست راه و رسم لغمه پریزی چرا هم از همه ترینده شراب کاره کنم یعنی من حلو ده کلی نمیشنم که اینم به غیر مستقیم یعنی طور دولتی میکنم طور دولت ولی در نصف خاندری هست مرا که از ذره تمغاست ساز و برگم و آش چرا هم از امترین به کار خاره کنم تمغا مالیاته لغت مغولیه تمغا و غین و ته دو نقطه لغت مغولی من این مالیات میگه من که از محل مالیات دارم نون میخورم این که از اون شراب بدتره که که را مظمت کنه کار دولتی داشته و ظاهرا همین اینکه میگه که گوی می آن طرف قجی یار ابتا این جوان دلاور آخر که زیاد چیز کنه میگه حفظش کن خدا یا این که سکرسی را آه نشینان پروانه میکنه تو نگهش دار مباده یه وقت این آه ها بله ماهی و مرغ دوش نخفتد بقا ماهی مرگ دورترین هست ما تو هوا پرواز میکنه ماهی هم تو دریاف دیگه چرندگان های خشکی خوشگی که جای خود دارد وقتی میگه ماهی مرگ یعنی که مال حواست که مال آب اینا از فقان من نخفتن تا چه برستد به فقان من تو یعنی همه موجودات موجود منو فقان شنیدن دوش یعنی دیشب. و پرندوش یعنی پریشب دی یعنی دیروز و دیشب میگن دی یعنی 24 ست دوش که میگن یعنی فقط ماهی و مار دوش نخفت از من وم شوخ دیده بین شوخ دیده یعنی شوخ شوخ من, من نمیدونم دوره حافظ بار فرهنگیش چقدر بوده به قول اندیزی امروز این کلمه پجارتی خیلی یعنی پر روی و شوخ دیده یعنی پر رو. ولی اینو نمیشو یه ای آدم ای جا سنگینی بگم اما این چقدر این بعد در اون روز مثلا همین پر رو الان مثلا بگم بی ملاحظه یه بهتره میشه گفت واسه آدمی که این آقای قاضی بی ملاحظه به اون بدی نیست که بگن که کور بود در حالی که خب معنیش دقیقا یکی دیگه این حالا شوخ دیده ای این شوخ هم خودش داستان داره شوخ در قرد هنجموشیش هم و شرک تنه شرکی که دلا که از تن آدم میگید گوسایی به مهنه بر همم بود ملاحظتاره خواهانش گفتاد مردی خام بود شوخ شیخ آورد در بازوی اون جمع کردن جمله پیش رویه. تو همون مردونه که میری پشت اینا رو که کیسه میکشه بعد میاره اینجا گلوش بازوی شما که دو اطلاب بهتون بگید یکی اینکه که بید آه چک بود دوم اینکه این که, دو این که من خوب خدمت کردم میگم اینجور که چرک شیخ آورد جروب بازوش که بعد بازو میزنم میگم آورد گفتش که جوان مردی چیه یگه عوو گفت جوان مردی برای تو اینه که چرت تن مردم روشون مردی <تصفيق> برهاد اونجا شوخ یعنی چرک بعد در دوره سعدی و حافظ ایما شوخ معنی پررو بکار میره پررو و وقید و الان معنی آدم زریف و خوشمزه بکار میره حالا این چه شده لاقل از پر اولا که آدم پررو و آدم بدزبان و وی رو آدم ازش نفرت می‌کنه، کوشش نمی‌گن کما اینکه چهت یکی اینوال تن خود آدم باشه آدم دوست نگاره بیگه تنش بخواه آدم بعد نیست ولی آدم طبیعتش قبول اینی که دور می‌کشه خود. از آدم پررو هم چون کنار می‌گیره یه باش باش بستن شوخ بعد همین آدم پر که آدم میترسه که پرش فر پر آدم میگیره ملاحظه میکنه دیگه می کنار گاهی که بنده مثلا یک خونده حسابی دارم با آقای صداقتفر و خودم روم نمیشه رو بکنم یا آدم پر روی وقتی بیاد بگیشون یک چیزی بگیر من که بگیرم این اصابی حاصل حسابشون رو برسم خوشم نید بگیر بنابراین کم کم این شوخ همین آدم زریف و آدم خوشمزه و اینا به کار رفتی که الان وقت میگم با انده شوخه یعنی آدم خوشمزه ای آدم زریف ولی در روزگار سعدی و حافظ به هیچ را اینجور نبودی شوخ که میگفتن این درگیجان هم نه نه هنهام میشه تو خود حافظم هست شوخی نگر که مرغ دل بالا پر کباب سودای خام و عاشقی از سر برنمی‌ت. شما تا اینجا نه این توی بیسیک بیسیک عاشقای به هر حال این چیز خصوص تومانی این چه؟ نه نه نه، اون خیلی جدید نه نه، شوخ چوده شوخ, شوخ گفتم اول که ما نمیدونیم این چقدر بد بوده در اون روز اینکه به فرما بوشینی به که هرسش یه معنی رو میده روز شوخیده ما نمیدونیم اون روز چقدر بد بوده یعنی اون شده کسی بگی یا ما تو فارسی یکی به تکلیف نظامی میجان نه چون نمیفهمی خود انسان تا که در اون راحت میگن که فهمیدی میفهمین و منجم میسا یعنی بار منفی نداره هستند بار منفی نداره ولی میفهمین یه شو که این نه میفهمین خود نمیفهمن بار منفی در تو من روز ما نمیدونیم چوفیده بوده نمی گفته دیگه بمون آه ایو ما نخواست نفهم تا طرا منم غم شو که سر افت بر نکرد. بر کردن یعنی بالا کردن بلند کردن بر معنی بالایی میخواستم که میرمشان در قدم کشم شام رو چه می پوشن وقتی اولو شام شد شام خواهم میگه من میخواستم در قدم او مثل شم بمیرم ولی او مثل نسیم سحر به من گذر نکرد از این نسیم سهر بمیاد شم توش کنش این چه حد لسیمه میخواستم که میرمشم در قدم تو شم تو خود گذر به ما تو نسیم سهر نکر جانا خدام سنگ دل بی کفایت است تو پیش زخم تیه تو جان راست که پر نکرد زخم به معنی ضربه است زخم به این معنی حالا می که حالا میدیم که بسیشکنده شد خونه هست این نیست زخم به معنی ضربه است و هنوز این کلمه در ساز به همین معنی به کار میده زخمه یعنی ضربه مظراب بینزن به ساز لغب سام جد درستم سام یک زخم بوده یعنی با یه ضربت گرز کلکی کی می میکنه؟ یعنی به دو خونی درشم معروف اصفام یه زخ اونی که ما حالایش میگیم امروز بهش میگیم زخمونه بشم کنم سن در قدم اون مثل شام بمیرم ولی اون مثل نسیم مثل سر شم رو بمیرم, بمیرم. دمیرم او را جان آخو دام سنگلوی که پایده از تو پیش زخم تیده تو یعنی ضربه تیده تو جان را سفر نگم یعنی میان به استقبال تیده شد کلک زبان بریده یا زبان کشیده اینجا زبان کشیده است در مصر خانلدی زبان بریده سن و سن هشت نصفه این قضا لاورده سه نصفهش زبان بریده است از جمله نصفه اون قضبینه و, و پنج نصفهش زبان کشیده است زبان کشیده یعنی زبانشو از دهنش از پشت یا از و سر قلمو که میتراشن مثل زبان دیگه اینکه که زبان کلک خداحافظ میده زبان کلک که تو حافظ چه شد تو که توفته سخنش میبرم سخن. و این نوک قلم حالا این زبون هم اون هرسی زنه این نوک قلم هرسی این یه یعنی بسیده ایست فاقی این که افکار آدمو با اون قلم و اون نک قلم بنابراین مثل زبون میدیم میگه کل که زبان کشیده یا حافظ در انجماعن با کس نگف راز تو تا ترک سر نکرد وقتی ترک سر کرد قلمو سرش میبردن دیگه و از اینکه تایش در قط میزنه این به قول این قط هم قطه قطه چمتان قط قط زن یعنی قط زن یه که اصخون بود در هم روش با چاهو فشار موردن که این ببوره اون سری شد حالی که کنه و این رو سربریدن تعبیر می کنه تا قلم حافظ سرش ترک نکرد راغوتور در انجمن نگذ یعنی اول استارش گذاش بعد رازی اظهار شد از که یعنی کلب و تشبیل کرده یا آدم یه زبانشو بکشه اما اینجا کلب تو زبان کشتی یعنی که یه تو صفت صفت مفعولیه خب یه فروی دیگه بخونه از خانم میخواد بخونی تو دلبرد رفتی دلشدگان را خبر نکر نداره نمیشه حالا خوبی اینو بگیرم این دوشیزه بعد از سال حالا مزید سراغ ما امشایت بگید نه نه بابا سال اولی که من اومده اینجا معلمی من از کلاس ما گرفتاره بعد هم خارش بالاست خیلی هایی بودو کنید از یه اول دیگه دوتاش تقریبا هم یه موضوع داره هم یه بوده هم شاید دوتاش یکی بوده برفت و دلشدگان را خبر نکرد یا یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد ظاهرا باز دنبال همونکار مسکل بیخبر خدافزی نکرده رفته یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت یا او به شاه را طریق هست گذر نکرد من ایستاده تا کنمش جان پدا و شم می اینه؟ تقریبا نظیر پطقدر است. من ایستاده تا کنمش جان پدا تو شم او خود گذرد ماتون صیم سحر نکرد. گفتم مگر به گریه درشت مهربان کنم بر نقش سنگ قطره باران اثر نکرد. دل را اگر چپ بر پر از غم شکسته شد صدا یه دام عاشقی از سر به هر کس که دید روی تو پووسید چشم من تاری که تاری که کردده ما بی نظر نکرد این تقریبا این قذال قبلی است همین جای در یک نسخه به جای این دل را اگر چه بالو پر پرازم چه کسی شد میگه شوخی نگرد که مرغ دل بال و خراب یا شوخی مکن که مرغ دل بی من شوخی و هم معنی پر چشم نمیخواد گفتن که خدا آم بزن دل. تقریبا مثل اون دیگری خیلی توضیحی نداره بله برای. او خود گذار به ما چون هستیمی سهر نکرد بله اون در نقش سنگ قطعه بارنا سهر نکرد با کلمه سنگ خواره که سنگش هم در عرض و مشترکه اونم یکی بشت بله ارز چیزی نداره یا بخت من طریق مربط برو گذاشت مربط در این مردانه یا او طریقت طریقت راه صوفیه است چیزی دیگه نداره که من توضیح بدم دل راگز چه بالو پل از شکسته شد سودای دام و عاشقی بیت آخر خیلی زیباست هر کس که دید روی تو پوسید چشم من کاری که دیده ما بی نظر نکرد اینجا نظر جنبه معنوی داره یعنی این نظر به معنی بسیدت رو یعنی بی نکرد یعنی بی فکر نکرد فعالیات مغزیست ولی چون کلمه نظر میاره میگه که هرکس که دید بود، تو بوسید چشم مند این برای زیبایی شر خیلی خیلی این بوسید چشم من با اون نظر نکرد خیلی مناسبه و خیلی قشنگ اما عوضش هرچی اون تو غزل ساده بود این غزلی که میخوایم محجره کنیم غزال بسیار بسیار است و بسیار هم خوار داره بخون آقای شاید بودیم چه مستی هست ندانم بیارین جا چه مستی هست ندانم که روز ما آورد باید بارید از اون باید. همی ندانم که ما چه این باده مقام شناس در میان آشنا باده به و راه سهراگی که مر بولنا تین ده آمد تمامی تاپور باب بهوش خبری پرپل سلیمان است که موردیه عرب از گشتن سبا بود یلو کار که دا انت دللم اون ترشمیه تایی من چرا که بعد تو او او او او چرا که که لشگری آدم، آزم که حمله برمن در بیش به قبار بردن بلک برامی حافظ کنین به تو کند که ارتجا که ارتجا به در جولت شما برد عرض کنم به قدر این ناسق از این ذهن من بود اینجا این غزل رو سه و سه شیش به نه سه دوازده تون از این دوازده تون سه ده تاش هست چه مستی است ندانم که ره به ما آورد دو نست خشنس رو و من تو زندم رو به الان به مناسبتی اینو مقابله می با دیوان سایب فکر می ندیدم بازم نایدم. اینقدر تحصیل دهید وقتی به این چه مستیه است که رهد ما چه که بود ساهی این باده از کجا آبر چه راه این مطرب مقام شناس که در میان غزل قول آشنا تو نیز باده به چنگار راه سهرا گیر که مرگ نقم سرا ساز خوش نبا رسیدن گل و نصرین به خیر خوبی با به شاد و گشه آمد سمن سفا با سواب خوشخبری سلیمان که مجده طرب از گلشن سواب تو دلاتو خونچه شکایت کار بسته مکن که بعد سوق نسیمی گرفتشا با علاج زعف دل ما کرشمه ساقی برافتر که طبیب آمد و آمد مرید پیر مغانم که من مرنجه شد چرا که بعد تو کردی و او بجا آورد به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم که حمله بر من در بیش یک غبا آمد خلق غلابی حافظ کنون به تو کند که ارتجا به در دولت شما بیار آقا یه بخانیم بیار اینجا کنم بدم بابا من گفتم بیار که اون بسه تو مشکله ولی اصلا بعد نموستی و حافظه ده،, ده, ده که راحت دیده بیشه دیگه بایده غزل خیلی توضیحات داره تویست و قشنگ خیلی میگه نمیدونم این چه مصدی است که مصدی عشقه مصدی بهارم هست وصل به بهارم میکنه و شیرازیان اصلاف بهار خیلی اصلافه خیلی زیاد یعنی پیر و جوون و زن و مرد و متدین و عرخور فرق نمیکنه روز تعطیلهشون حتما از شهر میان بیرون به کوهتون میرن صحرا و اصلا دوست دارن بیرون بگذارن که اکثر اینا تو نیست باده بچنگال را صحراگی که مزه نرگس و سراسته خوشنما بر ورد یا سعدی میگه که بیا که وقت بهار است حاتمن تو به هم به دیگران نگذاریم باغ بهار این و زیاد دنیا نفسی وقت بهار حوث سهرا بود، با عریضی دو تدایه نتوان تنها بود خاک شیراز چه بیبای منقشت دیدم زن همه زیبا که بران زیبا بود چه و چه؟ زیاد این برای اینست که خیلی پهار پرنگیز دره توی و بلبل هم زیاد پتره بلبل در تهران خیلی زیاد نیست فقط در, در باقه های شمران گاهی در بزاشور یا در گاه این طرف طرف الهیه و آب مخصول که اونا نزدیک خروب و سهرگاهان شما هوای گلگل میشندید ولی در شیراز زیاد این است که هوای شیراز است که می آدم رو سمت که و عرف بادم ربطی به اینکه که مؤمن باشی و فاسق نده به هماشون. چه مستیه است ندامم که رفت به ما آورد چه بود صافیه این فاژه از کجا هست دوم یه معنی من میکنم ادبا راه به معنی آهنگ موسیقی. سی مقامم به معنی باز دستگاه دستگاه موسیقی. من. چرا میزند هموندار این مطورب مقامشناس می ده این چه دستته می دهم این مطوربیکه در کار موسیقی استاده چه شدر دست پیده می زنه درمیان غزل قول عاش Dais قول و همه منی در مقابل غزل که نومی آوازی قول و غزل یعنی آواز و این همه قول و غزل تض بیرد منگارش قول و غ برد تصمیف و آوازم چه را میزند این مطورب مقامشناس این مطورب سیزیدان قصداد چه دست داری میزنه که وسط آواز تصمیز مناسب رو هم آبود درسته؟ حالا این صنعت مخصوص حافظه بهش میگن ایهام ایهام یعنی به وهم افکندن یعنی یک کاری بکنه آدم که شنونده فکر کنه که این مخصوص آیا این بود یا اون یکی بود یه بازی بکنه بالا حالا من الان میگم این معنی خوشه که این مصوبه این موسیقی دان استاد چه دست داره میزنه که تسلیص مناسب با آواز راهورد اما یه معنی راه زدن دوستی. راه راهزن دوستی راهزنی مجازن به معنی دلبری و اشتگری هم هست کفر دلپش راه دین میزد و آن سنگین دل در راهش مشه راه این میگذاشت راهزنی دین و دل بنابراین راهزنی رو معنی دلبری و شیفته کردن اشخاص هم هست به معنی مجلس و اون محیطی که این استاد داره توش میگه چه میگه این مطربی که نبض مجلس دودستشه و مجلس رو خوب میشه چجور دین و دل مردمون برم میبره, میبره که در میان غزل یعنی وسط آواز قول آشنا آورد یعنی حرف معشوق آورد میون حرف دل آر آورد در میان قذل قول آشنا و آشنای دوست، به صدیه معنی ای هام یعنی سنتی که در او کلماتی رو به کار ببرن که دارای دو معنی باشید اینجا هم راه ددن دو معنی داره هم مقام دو معنی داره هم قول دو معنی داره قذل هم آشنا یکی معنی قریب بهش میگن به خواهد یعنی معنی نزدیک اون که اول من گفتم معنی راستوسینی شد که این موضوع اصلاف چه چه رو میزنه که حتیقی مناسب و آوازم هم آورده یکی دیگه معنی بعیده معنی دیگری که هست حالی یه ذره دوبتره یعنی یک خود یا بیشتر دقنه کنی تا به اون معنی دوبان بسته بکنی که این, این،, این،, این،, این، موسیقی که نبز معلی سود چطور مردم شیفته خودش کرده که وسط آواز پیام دوست را برده با باده به چنگار راه سهرادی که مرگ نقم سراخ ساز خوش آباد ارز که برگل برشیار زیاده مرغ رو معنی مطلق پرندر مرگ رو معنی ماکیان نیست این مرگی که اینجا جای نونو مرگ جای نونو پنی که گرفته یعنی از پنیر ارزون ترسی بخیره اینه در عدال خواستی از میان ماکیان یا مرگ خانه سعدین میگه چون مرگ خانه به سنگم بزن که باز آیم نبخشیم که مرا پاک بند دام کنم مرگ خانه مرگ خالی که بگن مرگ یعنی پرامدن بعدی میگه دوش مرگی به صبح می نالید اقل و سبت هم ببوری طاقتو طبعا این مرگ کنگی نویده مرگ نقم سرا یعنی بل بل تونیز با دب چندگار راه سرای می تیه کن برو سهراتو همه سباقی مردم برای کسی ساز زنی تن مرگ بل بل ساز خوشخواه مفتا بوده رسیدن گل و به خیر و خوبی باز گل به معنی گل سرخ هزار داشت و نمی دونم این قسمت هم گفتن یا نه این گل در عربی بهش می ورد ورد یعنی گل سرخ اما آخه که اصلا گرد نداره که اسمش رو باشه عربشون حالا را نگیم که برخونه میارن و پول نفت رو اینا به تحتیلشون و درست میزن خیلی اون روزگار واقعا نبوده چیزی هم که نباشه که اسمشان نمیتونه باشه که حالا این کلمه گرد در عوستایی و زبان دینی ایرانیان باستان میده مره کرد برای طرح اون اعی آخرش تکنیمیزم تو منصبت گیرانگی درگید میشه بر طبان های هندو اروفایی وی و گیر و هم بول میشه فقط فارسی همیست مثلا فرض کنید که در پرانسه به جنگ میگن جن گیر در انگلیسی هست بو. ویلیام این اسمش، اسمش آس. بر فارسیم چی؟ گیون وایلز، اسمش. ایا لاتین انگلستان. بر فارسیم چی؟ گال. پرنس اف وایلز، نشید فارسی گال. گو به هم فارسی داریم گارم، بر دار انگلیسی داریم بور. بر فارسی داریم کارم، بر دار انگلیسی داریم بور. گو و گو، وری به هم بیارش. بنابراین، این ورته به صورت اصلیش در عربی مونده ورده در زبانهای باستانی لام نیست به جای لام ره در عوستا تا در پارسی باستان یعنی زبانی کتیزه های هرخامنشی که به خط میکی نوشته میشه درش لام نیست ره هست جزم. اینی که ره ورته تبدیل شده لام و گهش هم تبدیل شده به لش تبدیل شده به گ و گه یه مزموم هم میشه هم میشه در سارسی شده گستردن او داری برنج رو برنج خوراکی رو خلون پزن یه تلفازش هست گرنج گنجش در بعضی روسته های ایران اینجا و به و گه و اینا هم بڑیان برای تا ویش شده ریشن شده لام شده گل از اون طرف هم در اولید وردش باقی هم بگونه با و این و این هم ورد هم گل یعنی گل شده باقیه، باقیه گل ها رو میبینید که اس میگه نسرین در همیوید، نسرین فنفشه و سمن و ده ها گل دیگه که اگه اسمشون رفاک این تو هست و توی دیوان هیچ شاعری به انزم منوچهری اسم گل مختلف خیلی نداری شاعری که خیلی اسم گلاه مختلف آورده ولی گل یعنی به جای فلار این بیسی ما در نداریم یکی ای از اینا زبارش کرده چی؟ برای تا؟ بله، بله، بله، بله،, بله، اصلا گل یعنی گل سهر بله بله رسیدن گل و نصری، گل و نصر در چیراز، در روزگار حافظ خود رو بوده و عنوز این روزای مختلف رو تربیات نگیردن این صورت که در تمام حسوس سال باشه و انواع اخسان باشه و باکاره باشه و روزنوار باشه و اون باشه نبوده اینا همون گل خودرو با تیغای درست خوار بزر خصوصیات گل بوده پنجتان پر بشتید نداشته صورتی رنگ بوده بسیار شدید به دلیل تشریه کبیر با کبیر بود خیلی تا دست میده و اینا رو میچیدن بعضیش گلاب بکره گلاب یعنی اتفاقا در گلاب واقعی موده عراق جو اسو می‌گیرن نمی‌گن گلاب عراق بنفشه می‌گیرن نمی‌گن گلاب فقط عرق گل سرخو که می‌گیرن می‌گن گلاب برخجو گل, گل اصلیش در راست این روز میاد رسیدن گل و ن... خیلی هم عمرش کوتاه دو سه هفته بیشتر نیست این گل دو سه هفته بیشتر نیست برای اینکه یه جوری دیگه حفظ می‌گیره گل عزیز است غنیمت شما ایدش صحبت که با از این راه ها از آن خاطر رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی و بنافشش شاد و گشان. گشت یا گشت یعنی, یعنی با ناز و خوشی کنم بنافشش شاد و گشت آمد سمن ستا آفد سمن هم یاسمه سباب خوشخبری هدهد سلیمان باد صبا، باد است که از شر به قرب میوزید در مقابلش هم باد شماله که از شمال به جنوب میوزید به جز سباق و شمالم هم نمیشه نافتاد که هست عزیز من که به جز باد نیست دمساز صبا و شمال یک بادی هم از قرب به شر اون که معروف نیست اسمش بهش میگن ببور سبا دبود ولی با تایی که در عدب اسمش آمده ایز سباست ایک شمال خوشخبر واشیه این نسلیم شمال که به من میرسد زمانه به سال شهر آفزی سبا به خوشخبری هدهد سلیمان قسمه سلیمان رو که میتونید گفت که یه روزی سلیمان آمد و نشست سردی و, و پری و جن و امس و پرنده و چرنده و حنه ی هیگانات در قربتش بودن حالا من نمیدونم یه شاه یهود که هیچوقت من بکرده یهود از همین خاک اسرائیلوی و خدود اینجاها پیرون نرفته میدونیم وقت وقتی آدم وارد صحنه افسانه میشه به کلی همشه تغییر کنیم یه که پاچه های محلی بوده، حالا یه قسمتی حالا قدرتی هم بشه چیزی هم ب خرخوجدترین و سروتمندترین چای این ناهیه بوده وارد اقلیم افثانه که شد یه دفعی دیو و پلی و جن و انت و آب و آتش و بعد این همی در به هر حال میگه که سلیمان اینجا من یه سباوردار لازم بگید در استفان میگه که میگه که سلیمان آمد دید هدهد بعد توی تفسیران نوشتن که وقتی که آمد دید یه لکه اینا خب پرشون چیز کردن سایه میذارم بساق سلیمان رو چیز یکی که آفتاب نیگاه کردید حدود او حدود دو جاست نمیدیرمش گفتم که آمین خب قایدش نمیدیسیم بیاد مگه عضو وجهتش دو شدید نه عذاب شدید نمیدیرمش یا زدهش میکنم لا لعزبهن نهو او لعزبهن نهو عذابان شده این انه آخرش هم تأکیده یعنی حتما یا سرش می برن یا عذاب شدید شد طبعا حد میاد بازی سچار کجا بودی؟ میگه قول برن رسیدن به یه شهری و مردمش آخر پرستن چنان چنان اونجا بود میرانی اینه که میگه دهن مبارک از سلیمان علی نبی جناه و علایه السلام آب افتاد در زم بگویم این نکته هم که در بین یهود و مسیح سلیمان جز پادشاهانه جز پیغمبران نیست کلعت پیغمبری رو پیغمبر عایچن پیغمبر ما به دوش سلیمان افکنده و در اهدعتیب جز پادشاهانه و جز کتاب پادشاهانه آمده جز پادشاهانه برای گفت که ولی زنی هست جو چیزشون رو با این اینجا هستن رو افتا پرستن سلام خدا و باید میگه که نانا میگه که اینو میگیدید تو ما انگارت میدید حدیج که من تمام سپیوه های قرآن بسم الله برسته به استرهایی یه صوره صوره توبه یا صوره براعت چون اولش اظهار بیزاریس از مشرکین برا من الله و رسوله الله زیناه من المشرکین بیزاریس از روی خوده و رسوله شستات مشرکین بسم الله بذاره نسوش که آیه رحمتی، چونی که این آیه نده. این وقت در یه سوره ای به نام سوره مورچه، سورت و نم در قرآن، این نامه سلیمان است. و نام بسم الله هست. یعنی یه دونه بسم الله اضافه در سطح قرآن، به قداد سوره ها صد و چهارده هتا بسم الله هست، یه،, یه سوره نداره، یه سوره هم دو سوره هست. و اما بچه بودی میگفتن که، بچه ها میگفتن، یکتن شیطان اومده این بسم الله هستن، این سوره دوزیده و از بره، ملایجات امبالش کردن مسطس سوپه نم اینخ رو بر رابیه و بعدان عدتارن توی منطقه پرش میگه آن که بسم الله بر منقار را خود خودو میگه چون نامه سلمونی تو برده بود به نوکش گرد بود بسم الله آن که بسم الله بر منقار را یا منقار یا دادن تو منطقه پرش به هر حال میره و میده و خانوم یه میگه حدیه و مقاملت که نرکنسه و بعد آقا خواستگاری میکنه و تعدیقات یا خوشحالشون میشه و تشکیل تشمی و بعد میگه که تختش دلم میخواد که بیارن، دیوان، که میتونه این تخت میگه من دو روزه میارم، میگه یه روزه میارم، یکی میگه چهار ساعت میارم، یکی میگه نیم ساعت میارم آصفی که برخواه که میکنم وزیر سلیمان بود میگه که من هر لحظه چون را اعاده کنیم میارم یعنی به طرف در تخت رو میارم میگه که برغیس تو سره ممرد بود سره ممرد یعنی کافی که از شمشه ساخت از بلوغ. بعد میگه وقتی که آمد برغیس پاهاشو زد بالا فکر آبی پاهاشو زد بالا و بعد که آمد بید آب نیست چیزی، آب نیست بلوره و کجلت کشید یا نکشید و به هر حال حضرت صاحبت هم که میدن بیشتر که مایل شدن اون تعدیبات بگیشد این است که خیلی عوض می‌خوام، خیلی خیلی عوض می‌خوام. مثلا از خانومه باید ببخشم خدا رحمت کنه مرحوم او استاد من دکیو خان خانلری رو یکی از دوستان عزیز من که او هم مرده خدا او هم دو اموز رساله دکتری دکتر جهان لری راجب شعر فارسی در قرن اول و نحوه سخن او چه کار ندارم راجب چی مسعود سعدی می خون مسعود داره اثر پشیمانی میکنه از اینکه من چرا کار دولتی کردم که از پادبخش تم از کرده خیشتم پشیمانم دستو به راه دیگه ندارم این چه کاریه من, من نمیجاتم بر هم این زبان چه گردانم بر فرق من این سفر چندین چه زنی که من نست اندهامم کونه حمله چه کنی که کون شمشی کن چه دهی که تنگ میدهام خیلی تصیبه خشنگی آخرش میگه که گرد دیرهن عمل بتن توشم هم, هم توشه اوتود ما. این دوست من بندم دانشگاه شده میدم با اینکه هم فررس مین و همون دوست ما ولی چند دانشاشتون هنوز تلاش ننگذرمدادین. فوری هم وزیر بودیم م پندش پ پوللا که من به این دوستم کمک میکنم. چ جز در مواعه خیلی چیز وقتیتون نفرره من پیش میرسن. ختل خود رو این میار پیش مع مشکل چند میتونید این به من, من نمیرسن. یکی دو تا چند مورد بود که آورد تو من نمیرسن یارو یادداشت کرد و. گفتم برو از استاد رو پسکی بیریم بعد میریم کلخواه استادی حالا من کمک بکنم بعد رفته بود رفته بود و این بهتن خونده بود که استادیم هم نخنیدم گرد به همه عمل بسن دوشم هم پیشه ای حضور سلیمانم استاد رو بیم این جاکشم <تصح> این چمیست برای از دلات و غنشه شکایت سکار بسته مکن که بعد صبح نسیم میگره توشها آخر اولا میدونید که گل سهر باز می کنید و خیال می کردن خودما که اصلا این وزیگن نسیم سهر گل باز می کنید. من نمی دونم اون سوال درستی یا مهنم واسطحیماً احل نه اما به هرها هم سهرگاه هم باز می و بعضی گلای هست که همون گیر می بشه یعنی سهر داد میشه، غروب هم بسته میشه یعنی این نیلوپرهای درفتی بوته ها اینا تمام گلایی که می بینید بوته یک روز هست یعنی صبح باز میشه، این تا غروب هست و این هم میاد بازه ی میشه بعد قنچه مخصوصا گل سکر مثل اینی که بسته است میده، مثل گیره بسته یعنی همه جمع شده و اون برگای هم پیچیده با هم و محکم یعنی که کارش بستگی داره خیلی حافظ به این مطلب اشاره داره میگه که چون خونچه گر چه فرو بستگی کار جهان تو چون نسیم باری گره این فرو بستگی خونچه و اینکه که قنچه کیچی داستو باست داستو دل تانگو حا هم شدن به بستان چون کن چه با دل تانگو ونجاب نیج نامی پیروانی داریدند ونجاب پیروان گل انجام نمیشه هم شدن به بستان چون کن چه با دل تانگو ونجاب نیج نامی پیروانی داریدند و دل تانگیو پرو باستیو باستیو نه صفات ونچاست میگه که دلا تو خونچه شخرایت کار بسته مکن که بعد صبح نسیمی گرفتی میگه بعد صبح میگه نه تنها برای باز کردن خونچه هست نه دل تو هم باز میکنه امید میده دیگه اصلا یکی از یکی از خصوصیات این است که در هاست یعنی از روزی که این دیوان عزیز تدلیم شده یکی از کاراش مرهم نهادن به زخم‌ها و دردهای دل مردم بود بد مختیست که بچهشونو می کشدن، قارتشون می پدرشون در می و ما هیچ وقت روز خوش دویم امریکتی ندیدیم ما در تمام تاریخ ایران شاید 24 دور پنجا ساله داشته باشیم که آسایش آرامش بگید بشت همه زد و خورد و سلوغ و پلوغ و قارت تو تاراچ و بدبختی که مردم واقعاً به یه کسی احتیاجش داشتن که اینا رو دلداری بده و این حافظ بود یوسف گمگشته باز آیت بکن بم مخور قلبه احزان شاید روزی گلستان بم مخور بر سر آنم که گرزه به افقر به کاری زنم که قصص سر آیت. منظر دل نیست جای صحبت اغیار دیب چون اون به وقت دا برشته داراید نظیر این خیلی زیاد به ودای آیا که در میکده ها بکشاین گر از کار کرو بسته ما بکشاین اگر از بحر دل زاهد خود نیم دل در که از بحر خدا همین جا بلا تو قن چه شکایت سکا رو بسته مکن فردمی که درست میشه کارید منتظر آینده باش که بعد صبح مسیم گره کساو هست علاج ضعف دل ما ترشمی ساخیست علاج و معالجه هر دو یکیه یعنی دو سیغه از یک مستده یعنی درمان درمان ضعف دل ما ما دلمون که ضعیفه دل ضعیف ما دارمونه نمیخواد ترشمی ساخی میخواد. علاج ضعف دل ما ترشمی ساخیست بر سر که طبیب آمد و دبا آقا ساغی آمد ساغی هم ملوچی هم داشت میره که قدیم که درستی چیز بود بله میگفتن که فلانتی هست دباخوره نمیگفتن عرب خوره چه یا مثلاً به نکتره یا کلپتی میگفتن دبا آقا رو بردی بیار <تصفيق> علاج زهر دل ما که رشنی بر برای سر که طبیب آمد و دوابند مرید پیر مغانم زمان مرنجه شیخ چرا که بعد تو کردی و او به من این قصه را باز برای بعضی دوستانی که شاید نبوده باشند میگم شیخ وقتی حافظ میگه مرادش آخوند نیست اینا آیادمون میره اولا و فکر می هر جای که میگه شیخ میگه هبه بحب هبه بحب هبه چیز رو رو آخون داره بود آخون داد و وعظ و اینا رو اونا رو که میگه آخون شیخ یه مرتبه ای در تصفت گفت همون مردویی که سعدی به اون درجه رسیده بوده که شیخ شده بوده. شیخ سعدی اصلا کلمه شیخ به معنی رئیس قومت شیخ یعنی بزرگتر و معنی پیری هم میده معمولان چون پیرا بزرگتر هم بزرگتری سن میگارن بزرگتری فرمورواجی نام دارن این هست که میگن شیخ و در حرم تصواف، این مالی کیه این؟ در حرم تصواف یه پیر هست که رئیس سلسله و سرسلسله هست این پیر اگه در ده شهر خانقه باشی که در هر ده شهر نمیتونه باشی که این فقط مرتضی علی بود که گفتن یه شب چل بده عوضی کردن، هر شب جاخته باقی دیگه مردم نمیتونن این کارو بکنه. اینی که شیخ اگر در تهرانه دیگه به, به مریدای شیرازش شخصاً نمیتونه برسید. پانقای یا, یا شیراز داشت، بعد یک کسی رو بذاره اونجا به ریاست که بستیدی بکنه. یعنی یه نفر دوپن بذاره. این نفر بهش بشنیدن شیخ. بنابراین اصطلاح استورتیجه است و به معنی رئیس خانقای هر محله هر جو شیخ میگه اینجا اوست. تمام است تمام شاعرهای معاصرشون هم مثل اوبریزافانی دیگر هم رفید شیخ نگرم او است برای چون شیخ آخون بیست فقیه که میگه باعث که میگه زاید که میگه اینا فعنی آخون دیست. ولی شیخ او است صوتی یعنی کسی که علی فسقف منتها بله خود حافظ مثلا همجام مورده اید رفتی سوپی چهلو هشت موردش انتخاب هست سوپی نهاد دام و سر اوفه باز کرد منگاه دام اگه خلق باز کرد سوپی سرخوش از این دستی کچ کرد کلاه به دو جام دیگر آسفتی چقدر دست. می دارم تو جام صافی یا سوپی می کند عیبش همش همش می به همین دلیلی که یه بار من اینجا به تفصیل حرف زدم تا حافظ اگه از دیوانش میگه صوفی نیست برای که جز با حالات انتقاد با صوفی حرف نزدید و بعد این مسئله من اونجا مطرح کردم که ممکنه بعد از ما میپرسید پس تو چرا سعی میکنی که شراحافظه با اصول تصبب و با مسائل مرضو تصبب حل کنید جواب این است که یه مسئله نظری داریم یه مسئله عملی مگه اسلام بده توفته آقای نغاز بخونیم روزه دیدینیم دروح نگیم درزی نکنیم تنبل زن مردم نباشیم مالی کسی نخوریم چه نکن چه نکنیم بده ولی وقتی کسی اومد و گفت من پسرخاله خودم و تکریبی بهش جهنم شما دست منه هرچی داریم داریم بگیم به من این درست نکشم ای این چیز یعنی اسلام جداست مسلمی جدا هست مسلمانی جده سوفی جدا هست تصفح جده اون هم دکون کاریدن به همین کارید کسی که میاد آخو آدم خود چون میشنسه من خودم میشنسم تو آخو کون میشنسیم هر کسی نقص خودچون نقصای خودچون میگونه دیگه بشر هم توش وقت کامل نمیشه یا آدمی که میاد میگه که اقا من رسیدم منجایی که برد درستم حالا دست داده من من تو رو عزیز آقایی این حقیقتا هیچ نفر نداریم نمیشی کرد بنابراین خود دعوی پیری کردن این خودش یه قدری چیز داری و مردی رسمینا محاجم لابسلی یه کیمان غزگینی که این در سلسلی گنابادی نفر دوبار بود بلکه چندن نزدیک نفر افول بود برای اینکه سلسلی گنابادی رو این آدم اصلا را انداخل گنابادی کرده و بس که محفوظ کلمه داشت با حایز خیلی گرجه یکی بود که خیلی مردم دنبالش شدن و مریدان متعدد هزاران مرید داشتی این همه رو گفتی که برید به سلسلی گنابادی رو بعد میگه خود من بعد تو کردم که خود مرد حسابی تو خود دو تا مخصدی سه هزار چهار هزار آدم میان هستی و حسیت و جون و مال و ناموس و هنوش که در اختیار تو به عنوان اینکه تو اینا رو رهبری بکنی به سرمنزل سعادت تو ما یک خوید رسیدی تو که سرتباط نقص تو چه جدیدی میتونی مظلمه این اشخاص بروسی؟ این که بحثت رو خواهد که کش رفت بعدم گفت هر کس در یک کتاب برند در کتابان با اکنیم کتاب استوبر دیگه هر کسی دعوی رهبری میکنه در کار تصویفوین ها این تو روزن آدم اگه خیلی هنر کنه خیلی خیلی هنر کنه بتونه خودش تنها یه مختصر جلو جل خودش از آب این است که اون اصول حتی بارها من به دوستانی که هستم گفتم گفتم آه من از این اصول هرز می زنم معنیش که فردا برین من نمیشنستم این پیران من این سلسله ها خبر نبرم خودم این سعادتو پیدا نکردم که برم مشرفه به صحق بشم نه خودم نشدم، استاد منم هم که استاد من که از هر جهت از من هرگز فکر نکردم که بتونم به گره برسم میفرمون که من سعادت تشرف و فقر رو فیدن نکردم بزرگترین دنیا بود و بزرگترین استاد تصبح اینا بود اما من سعادت تشهر و فخر و هم نکنم منم همتون من نمیشنسم بلی حرفایی که میزنن این مسائل و این مطالبی که حافظم میگه اما تصبر نمی که خود او رفته باشه و سرسپته باشه و رسمن وارد این آین شده باشه بلی اینکه که آدم توش که میره مگه این احزاب این آینماه احزاب بخوند غیر از حرفایی بسیار خوب میکنی چون که میریم بعد میمیتازید چه خبر کنم به هر حاضر پیر زمان مرنده شد پیر که که مرادش پیر میکاده هست و برای که مق روحانی دیم زردوشت رو میگن و ما مسلمونا این افتخار رو داشتیم پیش وقت شهاب من داختیم و شعب نفروفتیم فقط داختیم قریفیم و خوردیم. کارای دیگه رو درست کردن و فروفتن شد و دوشتیم به عده کفتا نه شما اونا بارن عرق شما خوردیم عرض کنم که پیر مقان میگن، پیر میکده میگه پیر مقان میگه گاهی این افطلاح یعنی اون حال جذبه کسی که بعد اون وقت پیر اگر کسی باشه این تنها کاری که میتونه بکنه یک کسی که به یه درجاتی رسیده باشه اولا که در میدونه من یه مرد ارمنی بود سوکی هم بود با این که ارمنی بود سوکی خوزنجان اخبت بود و من کردار و رفتار این رو طوری دیدم که اگر این حاضر بود دستگیری بکنه من برم سوکی بشم بهشم گفتم تو نه، من الین حرفان نیستم، نمی‌کنم. آقای ادوار جوزه خداش دیاماته، مولد. مولدی تفسیر می‌کرده، نا. او آدمی بود که در کردارش هم همه‌ی اون اصول رو می‌شد دید. یعنی اون چه می‌گفت به زبان نمی‌گفت. در عمل هم همون جور آدم اگر کسی اینجوری باشه، من از زیر بار این نمیره که محصولیت کسی دیگر قبل کنه. یه وقتی آدمی که خیلی به کمال رسیده باشه، اگر یکی رو خد دفونه دستا و خیلی گروهانه مورید بیان و از اینجور تیغشون بزن از این بار گفتن خیلی یک نفره که می‌دونی که قابلیتی داره، من یه جوری بهش حالی که تو اگه این کارا رو بکنی برات خوبه، همین اونم نباز بیار بده من اینجور پول بده اونم چی بکنیم، تو خیلی اینه که پیر مقان اگرم به به, به پیر تصفیم اشاره بکنه یه چنین پیر نه دوکونوت که داره دوکونوت که دارم میگه مورید پیر مقانم که من مرنجه چرا که بعد تو کردی تو میگی که بله آبا میای و به کمال بیرسی و آدم میشی و امتوب میشی و طبیعت میشی و ریاضات میتشی و به وسهل میرسی و به ذات حق میپیبندی و چه و چه ولی بعد که میازدم اونجا نهی که نه هیچ خبری از این مسائل نیست فقط درخوش کنکه یه وعده رو تو دادی ولی پیر مقام به جا بود. این است که من مرید او هستم ولی یک نیستم مشترک داشتن بله اونام مریدباز بله اون مریدباز هستن بله اون احساس کارشون همه اینا دنبال اینست که مرید پیدا بکنن. و این موری رو چه بدبختی داره وقتی شما این 4 دفعه، 5 دفعه به من گفتی که به به آقا شما چقدر آقای خویی از این جواد در جای تو شما من چه یواشاش به ریش میگیرم. یواش شدم رفتم شدم خیال می‌کنم یکی اول دوم اینکه گفت که گفتم با آقای قمبادی میریم سن حوزه شباط دوت می‌کنم بندر می‌برم اونجا روا گفتم چه نونی گدایی داشتین غذا خورد که زمین جوف کرده که عادت کرده اینکه یه کار کنن وردارن بیارن بدم این بخوره و یه باشه نه خیلی برایت میارن و بست آقا هم بس مارچ می کنن گفت فلانی گدای هم باید پوروش هم دست شما آچ کار بست آقا هم مارچ می کنن کنم یه زیر مصندش میرن خب مگه مرز داره باشه کار کنه دیگه اینی که عادت این کار و این خودش خیلی بدبختی بزرگیه. به این دلیل اصلاً مورد و اینا گرفتاری طولیف می کنم و بهتر از چه آدم گرد این کارا نکرده هستم من حتی مراحتم از این درس اینجا می دم برای اینکه یواش یواش ممکنی که یا خیلی یعنی حتی می زن باید بکنم که بعد من چهارهای شدم این درست این درست نیست آدم این نفس رو باید دعایم باید بکنم بسارش. اگه من از هر راهی یک خب آدم دارید بکنم و دوان به هر حال، بیت بعدی تصبر میکنم اشاره به شاه شجایه به تنکشمی آن پر که لشکلین آزم که حمله برمان داردی شده اتفاق آورد برینش هم بیت بعدیست حالا توضیح میدم اما قبلا این رو بگم که بیشتر دوران زندگی فعال خاجعافز در دور شاه شجایه یعنی حافظ خیلی جوان بود وارد کار شده نشده بود ولی تازه بود که شاه شیخ ابو اسحاق در شیراز حاضر بود. بود جوانم بود بسیارم بلند پرواز بود دستود الباز خوب و حافظم بسیار دوستش میداشت ولی خیلی زود این گرفتار اون سالوس ریاتاره وقتباهت شد مختصب مبارزدین محمد مزفری دوست سالی بیش نکشید که کار خوش خوشمتش و بعد خودش دیگه که دشنام ها میداد که مکاریان و ازتربانان از برزبان راندن آن شرم داشتن خوشای میاد داد توی چارو چند خجرت این آقای مبارزدین و بعد خودش انواع احسام رضالت ها و گناه ها نیاری کرده بود یه وقت فکرات توبه کنیم منطقه موقعی توبه کردنیم خواست همه مردمی هم با خود توبه کنیم گفت میکده رو برندن چه بکنن چه بکنن چه بکنن؟ و حافظ خیلی زندگی بد در روزه داره میگذارم من شیست سالی این مبارزه دین بوده یک کلمه اسم مبارزه دین تو دیوان حافظ نیست هر جام هست به اسم محتصد محتسب شیخ شده، فسق خود از یاد ببود طرقه ماست که در کانه ریز امریز ها کزمه توییز جامن این اکسه بنده دعویب از محتسب بباد این زیاد هستش که باده با محتسب شهر ننوشی ها که خورد باده اتو سنگ به جامن روابط خاجه با این مباردین هم بسیار بد بود این به قدر آدم رعضی بود که بچه ترسیدن که اینا رو هم کلکشونو یکی از کسراش شفتجا جوان بلندالای بسیار زیبایی بود جوان زیبایی هم بود زیبایی ترکانه دارد ترک وقتی میگیم مراد تشک با دنیاست. این مادرش ترک بود یعنی از ژاب زرد بود و این همون جوری آمده بود ولی جداان بسیار دی داریمقط بلندی داشت و موای صرف و اندام خیلیایی و با اون این درس چیزی نکند بود ولی عربی و ادبیات نه از حرف زدن مردم جا و شعر میگفت و خیلی ل عادی دوست می داشت نه و اینو دفروت و برادر شامحمود ای کسان دیگه ترسیدن که پدر اینا رو کلکشون رو کنند، کردن پدر گرفتن پدر رو گرفتن و چشمشون میل کشیدن یعنی کورش کردن در زندان با این حال دست از توتعی بر نمیداشد با بالاخره کلک کنند بعد شاخشو جامیه شاخشو جامیه، یه 20 سالی، 20 سالی، 24 سالی پتران باز بود چیز خاجه روابط خاجه با شاه شجاع خیلی خود حالا من دفعه بعد این جلید دوپر میرم میارم تمام اینها رو با عدد و رقم بهتون میگم که در دوران زنویدیوحفظ چند سالش دوره شیخ عبر سال بوده چند سالی دوره مبارزتین بوده،, بوده،, بوده چند سال دوره شاه شجاع بوده چند سال بعدش به شلوق و فلوق حتی حافظ تیمور وقتی آمدش روازی بیره نه. تیمور هم دیده. و روایتی هست که به دیدار تیمیر هم رفته و هر حال در وقتش با شخصوزا خیلی خوب بوده. شخصوزا در ضمن شعر شماس و شعر و نام بوده. و با یه بار هم میگن که ایرادی از حافظ گرفته بود که گفتو بله شعر شما خیلی عالی و فلان این ولی تا تو به هم رب نداره. یکی عرفانی یکی... فلسفی یکی آشمانه است یکی از فساله یکی از فراغله پاکست گفته بود که بله سوخن پاچه ها محض محض حویقته بلی نمیدیم هم چطوری که این شعرهای ناقص ناقص به محض اینکه که گفته میشه تمام افتار دنیا فارسی زمان سیر میکنه و شعر بعضی ها یعنی خود ها شجاعه چهر سال قدم از در بوده بیرون دیمیم <تصفيق> در حال از این حرفا هم با هم داشتن و خیلی زیاد اشاره شاشو جا داره شاشو جا جوان زیبایی بود و دوست داشت زیباییش و ستایش کنن یعنی نفسیست بید این نفسی بود در روان که دوست داشت همه بفهمند این زیباست و بگن روان خو من چشم من آفتانه توست درم نار که خانه خانه توست از داریست که بگنید، پردیدید بر چیز شخصوگاه هست و همه اون قضال که شخصوار میگه توش لقبش شخصوگاه عبول فوارس بوده و عبول فوارس ترجم فاسی میشه شخصوگاه این هست که اینجا وقتی این شخصوگاه عرض کردن زیبایی ترکانه داشته و خیلی چون مباردین شلطان میکرده یه وقتی از بیران تصفیل میدهد چه میگه که زود که این ترک کسر قرار است تولد من سعودی است. سوال شده دومباله و همین طور هم میشه. به هر حال حافظ خیلی شعر داره که اشاره میشه عاشق راست یکیش همینه. به طنگ چشمیه. طنگ چشمی اصلا معنی نظر فنگی نه، اولی در زم چشمه، میدونید که چشمه اینا، اون ای پنس زیرش اونقدر پیام خیلی آدم بامزه بود، انگار مثل تراکی زنگوله. <تصال> این زنگوله کی گردن اصف و بوز و اینا میبوندن یه یه تراکی <متصف> این که چون میگرده دیگه میگرد چشمی سراکی زنگوله میگرد یه خبت واقعا جی میگرد اینو اینکه چشم تایم میشه دیگه یه غطه یه بسیار تشنگی هم مرمون به خدا داره آخرش میگه تایم چشمی صفت ترکان خیلی تشنگه و این هر دومی رو میرسون و تایم چشم و وقتی این ترکان لشتگری بودن سپاهی بیشتر شما یعنی هرفه رو بیشتر بیشتر شدن میمارن همیر میشدن و از این به برجات بالا هم میرسیدن ادهی از اینا بودن تو برخورد در... میگه با اتصم خلیفه بنده ترک خرید و گفت ملوچه هیچ بنده رو از ترک نباشد یکی دو تا خلیفه بعدش آه این ترک مسلط شدن به کار بعد اینا پرهیزدگی هم که. اطلاعات فرهنگی رو نداشتن طبیعت درست هستانی، وحشی رویدن دیجئه به جای رسید که خلیفه رو عشب می تو خفص صبح داریش نماز هم درست مثل این مرغ دستامود که گوندیش خلیفه تو و دیشون خیلی به جاهای بالا رسیدن، این کسانی هم تو در ایران فرمون رابی کردن عیساشن تورش بودنی محمود غازنی سرکل غازنی تورش بود بعد تور کردنای سالجویی دنبال جام میاد بعد خراسانیانم هم دن تونستم تور بودن بعد مغول آماده بودیم چارسونه بعد هردو اخرشی چه آب هم که چه آب آسم که تور کنه در اصفهان در مرکز فرمون رابی ایران تور کرد چه آب آسم با با با در فجرش تور و میگه که من اون در احوال شعباس عباس نوشته که وقتی یه می آوردن و این اجدلابه میکرد که قربان من رو تصدق کنیم من عیالبارم این هم بدلخت این وقتی شا عباس میگه یخشی ساخلا خوب نگهت روی کنیم یعنی ساری شوید میگه یخشی ساخلا طرف ندونیست که باید دواره کلک باباره با و هر حال ترکی عبیزت در همون روزگار در, پای در استانبول پاک ترکان عثمانی در دردار پارسی عبیزت شاه اسماعیل دوم و شاه اسماعیل اول اسماعی پادشاهان سخدی دیوان شعر ترکی از اون در دسته سرطانسلیم پادشاه ها عثمانی هم دیوان شعر پارسی عبیزت در دسته من از حجایل به تاریست هر حال به تنگ چشمی آن ترک لشتاری این هلا هم تنچشمی رو یعنی اینکه خب ترک تنچشمه هم از این درمونیش که حمله هم، بر من بر یک خبه آورد هنیز هم آدم فبیر میگن من یه لغباست که حمله بر من بر یک خبه آورد بعد دنبالش خیده که اشاره میشه آخش جایه فلسک بلا همی حافظ به تو کنه تو یعنی نیدو با. هم، قره. قره از قره یعنی، قره یعنی با هم مغازه ای کوره، کوره همینه، کوره یعنی کوره یعنی به و بزرگ و در ادامه فرضیم تو و کور هم دیگر کنه. یعنی خامی خاصیه من. به بود یا بودجه بیمه‌ای ماهر و دارش کنم اینکارو. بلند غلامی حافظ کنون به تو یعنی هم اکراح از مجروح و کراحط یعنی این فرق. فرق غلامی حافظ کنون به تو کنند یعنی به میل. که التجا, التجا یعنی تناولن. تناولن. به در دولت شما ها دارد. دی که فلک خلام آفایی میشه برای اینطور شما ها خناه آورده، فرشای. فرشای یعنی که بکنه روش پاس به شروعش میگه طور که لشکری و خنکشمی که لشکری فقط چاست دیگه نه. اینا چیزهای شعریه دیگه یه ساره دلتنگی شاید چیز می‌کردن دیگه دوست بودن با هم به خصوص خیلی شهن افتحافظ خواهد آدمی که قرآن در چادر بعد از برداشت از علمای بزرگ بود مرد خیلی جاسنگی بود بعد بسیار خوش بود موسیقی خوب بیدونست یعنی آدمی نه بود آدمی بود که پادشاه هم نازش رو میخرید مثل بول, بول. بانه که محضرش غنیمت بود و یه دهن که میخوند تمام اینا رو چیز کرده بود دیگه این هست که خیلی پیوزش بودشتن و علامه هنگش بودن و میتونست خیلی حقا رو بزنه و میزن به, به, به یکی از توی از قصیده هاش به قمام دیر محمدی صاحب ایار و ایار یکی صاحب ایاری سر را خونه بوده قصیده ی درمتش داخته بعد توی اون میگه هزار سال بقا بخش دادت منت برش میذاری که من تو رو ستایش می هزار سال نجبه بقات میشه هزار سال بقا بخشد از مدایه من چنین این اسمت هایی به چون تو ارزان. هایی منت سر مندوش میذاشته که مدوش کرده بلو است که بعض اینا خیلی فرق باشته با یک سایر گوشنه مجردی که میگونم در یک مدوش به که سنده روش کردن خیلی بعضش خواهد آ سبا اسم اون شهر که بلغیس ملکی بلغیس در ملکی سبا. سبا. یا سبا اسم اون شهر خوشخبری و اطورد سلیمان است مجده طرف از گلشن سبا آورد